خب، اسم التفضيل، عمله اسم التفضيل. الحرير أغلى من القطن الحرير أغنى من الق من القطني. النيل أطول من الفرات، الطيارة أسرع من القطار. ما من أرض أدود فيها القطن منه من أرض مصر لا يكن غيرك أقرب إليه, إليه الخير منه إليك أرأيت رجلا أولى به الشكر منه بمحسن لا يمن إنجا أگر شما دي قد اشتواشيس در این شش مثال دو حالت رو آورده یکیم این اسم تفضیل به شکل ضمیر مستتره و دیگری به شکل اسم ظاهر بعد اومده البته این به شکل ظاهر اومدن اختلافات درش هست ولی ببینیم صاحب کتاب چی میگه یرفع اسم التفضیل الضمیر المستطر مسته تر بالی بالی چون یعنی خودش پنهان انهان هست یرفع و پس مرفو میکند اسم تفصیل زمین مسته تر را و لا یرفع و ظاهر و مرفو نمیکند و مرفو نمیکند اسم تفضیل اسم ظاهر را و رساس قیاس الا مگر اذا صح ان یقع في موضعه به بمعناه. مگر زمانی که صحیح باشه که در جای او به جای اون فیلی رو بیاوریم که هم معنایش باشه خودش در بحث مثال یاورده مثلا همین مثال چارون ما من ارض اج ود فيها القطن منه في ارض مصر عا ما بتونين سر جاش بگویم ما من ارض يجودون ان يبود اج القطن تجودته في مصر كجودته پس ولا یرفع الظاهر قياسا اسم ظاهر رو مرفو مرفوع کند مگر زمانی که صحیح باشه که در جای اون اسم تفضیل فعلی رو به معنایش بیاوریم. بله زمین رو که رفع میده ولی اسم ظاهر رو مرفوع نمیکنه مگر این شرط داشته باشه مگر این شرط داشته باشه خب خو که هر داره. کنید. اینو گفت و گفت و هذام فی کل موضوع همین چیز همیشه پیش می‌آید در هر جایی که یقه فیه اسم التفضیل که اسم تفضیل یقعو بعد نفین او شبههی بعد از نفی یا شبهان واقع بشه میگه اینی که ما بتونیم سر جا به جای اسم تفضیل فیل فیلی رو بیاوریم چه جاهایی میتونه پیش بیاد میگه هر جایی که اسم تفضیل بعد از نفی اومده معنیم مانند مثال چهارم ما من اردن یا شبهش لا یکن غیروکا ارائتا که همون استفهام هست یعنی نفی استفان یعنی چه؟ نفی استفان بله و یکون مرفوعه اجنبی مفضلا على نفسه باعتبارین میگه مرفوع اسم تفضیل اجنبی هست اجنبی رو در پاورغی توضیح داده المرفوع الاجنبی هنا هو ما لم به زمیر الموصوف مرفوع ادنبی اینجا آن است که زمیری زمیری که به موصوف برمیگرده به آن نتشسیده باشد. یعنی به همین اسم مرفوع زمیری که به موصوف بر میگردد باشد. ما من اردن اجودو فيها القطنو ببینید اینجا قطن مرفوع است باطی ما بخ... با اجوات اسم ظاهره و اسم جاز اسم ظاهره تون اینجا اجوات بعد از نفی اومده بعد, سی اومده؟ بعد از چی اومده بله یا بعد از نفی یا شبهش منظور استفهام خیلی لبونش هم می‌گی سن؟ اگر لايكون بله پس نفی باشه یا شبه نفی که همون استفهام است کتاب دیگه میارن یا نفی یا استفهام یا نفی سمس. یا استفهام خب در این حالت اسم ظاهر رو چکار میکند فقط مرفو میکنه. ولی همیشه اسم ظاهر رو مرفوع نمیکند همیشه اسم ظاهر رو مرفوع نمیکند پس ما من عربن اجودو فيها القطن قطنو منهو فی عرض مصر خب بریم جلالتر میگه و مرفوع مرفوعوهو اجنبيا مرفوعش چه هست؟ اجنبی هست یعنی زمیری که وصل باشه به اون و به موصوف برگرده نیست منظورش از اجنبی اینه زمیر داری زمیری که وصل باشه و به موصوف برگرده دارش؟ نیست بهش میخاطرین خب پس مرفوع اسم ظاهر عجنبی هست مفضلا على نفسه بر خودش فضیلت داده شده است به دو اعتبار بر خودش حالا در پاورقی این نقطه رو توضیح میده میگه فانت تره. فانت ترى ستة مصالح دارين ين مصالح شهر فعندي شيش أن اسم التفضيل في الأمثلة في الأمثلة الثلاثة الأخيرة آه, آه، من هي ميشي شمال مجهم كولر آبي زيرش ننشي وهاحرف جوش ننشي كده مشاف واكرش أنا بعد أستاذ الوزارع أستفادة شاء الله ونجا ميرين خب پس دقت قد درسته رو بخونیم که اینجا مهم هست فانت ترى ان اسم التفضیل في الامثلة الثلاثة الاخیرتی مسبوق بنفی او نهی او استفهام شما میبینی اسم تفضیل در سه سال آخری یعنی مثال چهار و پندوشیش مسبوک یا نهی یا استفهام هست ما من اردن نهی هست لایکن نهی هست جلای ناحیه گومده رویه کن به خاطر این مجموعه و ارئیتهم استفهام هست. عل ترتیب، به شکل ترتیب و انما مرفوعه میگه و مرفوعه اسم تفسیل فی کل منها اجنبیون در هر یکی از این سه مثال چی است؟ تشاب نه به به معنای نفیه. فرقی نمیکنه گفته بود نفی و شبه آن نه شبیه نفی دیگه خب منفی هست یا نیست؟ منفی ولی واترلاب شبه منفی دیگه. خب بریم جلوتر. پس وان مرفوعه مرفوع او في كل منها اجنبيyon میگه مرفوعش در هر یکی اینا چه هست؟ اجنبي هست. ای غير متصل به زمیر يعودو على الموصوف. اجنبي رو توضیح ده. این ای ای تفسیری هست. میگه یعنی غیر متصل هست به زمیری که بر موصوف بر بگردد. مرفوع وصل به زمیری نیست که اون زمیر به چه بر برگرده به موصوف مثل حرف مثال ما من ارضن اجود فيها القتل میبینیم که مرفوع ضمیری بش نشسیده یعنی کسیده مرفوع ما اینجا قطن هست در مثال بعدی الخيرو هست در المثال بعدي <تصفيق> الشكره هذ، خوب، وأن هذا المرفوع مفضل على نفسه باعتبارين، ميجا إين مرفوع مفضل هذ برخودش، <تصفيق> بلى، بدو اعتبار، فإن معنى المثال الرابع مثلا مجمعناية المثال الرابع مثال چهارمي مثلا مثلا وده روية مثال چهارمي روك ما من ارض اجود فيها القطن منه في ارض مصر توضيح مده ان القطن باعتبار كونه مزرعا في ارض في ارض مصرية اجود من نفسه به اعتبار کوونه مزروعا في ارض في ارض اخرى خ ببینید اومده از چه زاویه‌ای این پنبه رو برتری داده میگه پنبه‌ای که در سرزمین مصر کشته بشه از پنبه ای که جای دیگه کشته بشه چاست بهتر است پس اومده چه رو از چ... بر چی برتری داره پنبه را بر پنبه بر خودش ولی به دو اعتبار سهنید. به اعتبار اینکه در چه کشته بشه؟ سهنید. آره در سرزمین مصر میگه ان قطن با اعتبار قومه به این اعتبار که در فی ارض مصر، فی ارض به بین اعتبار که در سرزمین مصر کشته بشه اجود و من نفسه، بهتر هست از خود پنبه ای که، باشه. بله. نشه در این خود در این مثال اومده چی رو با چی داده؟ پاوانا. پاوانا پاوانا خب درسته فبلنا پمبه که تو خب درست برای بر خودش در هیچ داده منتها از این زمین بر اون زمین. و تو اعتبار این. پس ما ما من ارضن اجود فيها القطن منهو فی ارض مصر. هیچ زمینی وجود نداره که پنبه بهتر باشه درون از خود پنبه. از سرزمین مصر، از سرزمین جی، خب این پس به این شکل بود. بله با با پامانیس؟ دقیقی داشته باشید. تو نه نه یک درس دیگه نخویم درس دیگر رو؟ پس خلاصه فاس خلاصه‌می‌کنی آقا شما دقت داشته باشید برای اینکه در بوشتن بماند خب بحث چی تموم شد اسم تخزیل مفعول که نداره این نقطه رو خیلی حساس کنکوریه تو ذهنتون داشته باشید اسم چیز مسیون قبلن که مثلا مفعول مطلق و مشبه مفعول, مفعول, مفعول, مفعول, مفعول, مفعول مفعول نداره در کتاب قطر ندار اینو آورده آقای ملا سوهل هم خونده منصوبی دیگه نداره و دو حالت داره که در خودش چی باشه فائلش باله زمیر بسته که به محاقب داره مونس باشه هو مزاکر باشه هوه مونس باشه هیه. مثلا موقعی که میگین طیارت و اسراو دگه در اسراو نمیگیم هو مستره بلکه میگیم چی مستر داره باله پس دو حالت داره اون مرفوع اسم اسم تفضیل مرفوع که داره ولی اون مرفوع یا زمیر هست که اون قیاسیه یا اسم ظاهری هست ولی این حالاتو داشته باشه که بعد از چی اومده باشه؟ نه یا شبهش کهمون که نهیو و استفهام هست درس بعدی انشاءالله اسمای زمان و مکانو فردا بخونیم یا امروز؟ فردا عملی اسمی